این آقا کیست؟ ایشان پدرم است. او پدرت جوان است. بله، پدرم جوان است. این خانم هم مادرم است. این پسر کیست؟ این پسر برادرم است. این دختر خواهرت است؟ بله، این دختر خواهرم است شما چند تا خواهر و برادرید؟ من یک برادر و دو خواهر دارم. تو پسر بزرگ خانواده ای؟ نه من پسر بزرگ خانواده نیستم. برادرم پسر بزرگ خانواده است. من. برادر ندارم. من فقط یک خواهر دارم. بله می دانم که تو یک خواهر داری. برادر تو چه کار است ؟ برادرم کارمند است. کارمند بانک. خواهرت چطور ؟ خواهر بزرگم پرستار است. و خواهر کوچکم هنوز به مدرسه میرود